فصل دوم تئوری عشق یک عشق پاسخی به معمای وجود انسان هر تئوری عشق باید با تئوری انسان و هستی او آغاز شود. هنگامی که ما به عشق یا به بیان حقیقیتر به وجود چیزی معادل عشق در حیوانات پی می بریم ملاحظه می شود که دلبستگیشان در اصل جزئی از اعمال قریزی آنهاست. در انسان، تنها مقدار بسیار کمی از این سلسله اعمال قریزی دیده می شود. چیزی که لازمه وجود انسان است، همین بیرون آمدن او از دنیای حیوانات و سرپیچی از انطباق قریزی و چیرگی بر طبیعت است. گرچه هرگز طبیعت را ترک نمی کند، چرا که او خود جزئی از آن به شمار می آید با این حال وقتی که از طبیعت گسست دیگر قادر نیست بدن بازگردد هنگامی که از بهشت حالت یگانگی ابتدایی با طبیعت رانده شد چنانچه بخواهد دوباره بدن بازگردد فرشتگان مقرب کرروبیان با شمشیرهای آخته راه بر او میبندند انسان تنها باید با گسترش نیروی اقلانی خود با دستیابی به هماهنگی جدید یعنی با دستیابی به هماهنگی انسانی به جای هماهنگی ماقبل انسان که دیگر قابل برگشت نیست پیش برود. انگامی که آدمی پدیدار گشت، نژادش از یک موقعیت معین خارج شد. یعنی از مرحله غرایز معین به موقعیتی نامعین و مبهم باز قدم گذاشت. در اینجا فقط گذشته او مشخص است و راجع به آینده تنها می‌دانیم که حیات آدمی به مرگ ختم شود بشر از استعداد و قوه تعقل برخوردار است او حیاتی است که از هستی خود آگاهی دارد او از خود از هم نوع خود از گذشته او و امکانات آیندهش آگاه است این آگاهی از خیشتن به عنوان وجودی مستقل و آگاهی از عمر کوتاه و دانستن این مطلب که بدون اراده خود متولد می شود و میمیرد، آگاهی از این حقیقت که پیش از عزیزانش می و یا آنها قبل از او خواهند مرد، آگاهی از تنهایی و جدایی و درماندگی در برابر نیروهای طبیعت و اجتماع، هستی استقلال نیافته او را به زندانی تحمل نپذیر تبدیل می‌کند. اگر بشر، قادر به رهایی از این زندان و دستیابی به دنیای خارج نبود و خود را به نوعی با انسان مرتبط نمی کرد، دیوانه می شد. تجربه این جدایی سبب استراب می شود و در حقیقت منبع تمام استراب هاست. جدایی یعنی بریدن از همه چیز و نداشتن هیچ گونه استعدادی برای استفاده از نیروهای انسانی خود. پس جدا ماندن یعنی بیچاره بودن یعنی ناتوانی درک جهان، اشیاء و مردم. واضح هست که این سخن بدان معنی نیست که جهان میتواند مرا مورد تاخت و تاز قرار بدهد و من قادر نیستم در برابر آن واکنشی نشان دهم. بنابراین جدایی منشأ استراب شدید است. از این گذشته جدایی سبب احساس مجرمیت و شرم می گردد. این احساس گناه و شرم در مورد جدایی در کتاب مقدس در داستان آدم و حوا به روشنی بیان شده است. پس از آنکه آدم و حوا میوه درخت معرفت نیکی و بدی را چشیدند و بعد از نافرمانی آنها مسلم است که اگر اختیار نافرمانی وجود نداشته باشد نیکی و بدی نیز وجود ندارد. پس از آنکه آنها خود را از هماهنگی نخستین حیوان و طبیعت آزاد یافتند و به عنوان انسان متوجه شدند که اوریانند احساس شرمندگی کردند آیا می توان تصور کرد که افسانهای با این قدمت و چونین ابتدایی اخلاقیات اندیشمندانه بینش قرن نوزدهم را در خود دارد و یا تنها نکته مهم این داستان القا احساس شرمساری ناشی از اوریانی اندام تناسلی آن هست اما مشکل می توان چونین برداش کرد و اگر به این داستان از نقطه نظر فرهنگ اصر ویکتوریا بنگریم، نکته اصلی آن از نظر پنهان می‌ماند و این نکته اساسی چنین است. پس از آنکه مرد و زن از خود و از یکدیگر آگاهی یافتند، به دنبال آن به جدایی و تفاوت یکدیگر نیز آگاه می‌شوند. زیرا که به دو جنس متفاوت تعلق دارند. اما با وجودی که به جدایی خود پی می‌برند، که نسبت به هم بیگانه میمانند زیرا هنوز نیاموخته اند که به یکدیگر عشق بورزند و این نکته را به خوبی میتوان در رفتار آدم دید آدم با سرزنش حوا به جای سعی در دفاع از او از خیشتن دفاع میکند آگاهی از این جدایی بشری بی آنکه عشق آنها را به هم پیوند دهد منشأ شرم است در عین حال همین مسئله سرچشمه گناه و استراب نیز محسوب به بدین ترتیب عمیق‌ترین نیاز انسان فائق آمدن بر این جدایی و رهایی از زندان تنهایی خیش است زیرا وحشت حاصله از انزوای مطلق آنقدر عمیق است که فقط با کنارگیری کامل از دنیای خارج می توان این احساس جدایی را زایل کرد چون دیگر در این حالت دنیای خارجی که از آن احساس جدایی می‌کردیم، از میان رفته است. انسان در هر سن و در هر فرهنگی، همواره در صدد یافتن راه حلی برای یک مسئله واحد است. مسئله چگونگی فائق آمدن بر جدایی، چگونگی دستیابی به وحدت و چگونگی رهایی از زندگی فردی و یافتن یگانگی. این مسئله، برای انسان نخستین که در قار زندگی می کرد، برای بادی نشینی که گلداری می کرد، برای دهقان مصری، برای تاجر فینقی، سرباز رومی، کاهن قرون وسطا، سامورایی ژاپنی و کارکنان دفتری و سنفی همباره یکی بوده است. مسئله یکیست، زیرا زمینه به وجود آمدن آن یکیست. موقعیت انسان، و شرایط هستی انسان اما جوابهای آن متفاوتند به این مسئله می توان با پرستش حیوانات قربانی کردن انسان یا استیلای نظامی یا غرق شدن در تجمل و ثروت ترک دنیا با ریازت کشی کاری که به حد وسواس بیماری میرسد، آفرینش هنری عشق به خدا و به انسان پاسخ داد با وجودی که تعداد این جوابها بسیار است به گواهی تاریخ اما بیشمار نیست بلعکس به به محض اینکه از تفاوتهای جزئی که بیشتر سطحاً تا عمقی چشم بپوشیم در میابیم که انسانها در فرهنگهای گوناگون به این پرسش پاسخهای محدودی دادند و جز این نیز نمی‌توانست باشد تاریخ دین و فلسفه در حقیقت تاریخ این پاسخها، تاریخ گوناگونی آنها و تعداد محدودشان می باشد. این جوابها تا حدی بستگی به درجه فردیتی دارد که فرد بدان رسیده است. در کودک شیرخاره هنوز منیت و فردیت رشد چندانی نیافته است. کودک هنوز خود را با مادر یکی احساس می کند و مادامی که مادر در کنار اوست، به هیچ وجه احساس جدایی نمی کند. احساس تنهایی کودک با حضور جسمانی مادر و با لمس پوست و سینه او درمان می شود. اما هنگامی که حس جدایی و فردیت کودک رشد می کند، دیگر حضور جسمانی مادر کفایت نمی کند در اینجاست که نیاز غلبه بر احساس جدایی با وسایل دیگر سوای مادر در او برانگیخته می شود. به همین ترتیب نسل بشر در کودکی با طبیعت احساس یگانگی میکند. خاک و حیوان و گیاه هنوز دنیای انسان به شمار می میرود. او خود را با حیوانات همزاد می میکند. نقابهای حیوانات را بر چهره گذاشتن، حیوان خاصی را مظهر قومی فرض کردن یا پرستیدن آنها به عنوان حیوان توتم یا خدا دلایل بارزی بر این معنی است. اما هرچه نسل بشر از مرزهای زندگی ابتدایی فراتر می رود، بیشتر خود را از طبیعت جدا می سازد و نیاز او برای یافتن طریقی به منظور فرار از جدایی افزون می شود. یکی از روش های دست یافتن به این هدف را می توان در انواع لذت های آمیخته با ایاشی و میگساری یافت. این روش ممکن است به صورت ایجاد نوعی نشعه مصنوعی، که غالبا به کمک مواد مخدر انجام میگیرد دیده شود. بسیاری از مناسک دینی قبایل نخستین تصویر زنده از این نوع حل و جواب است. در حالت خلصه و نشعه دنیای خارج ناپدید می گردد و به همراه آن احساس جدایی نیز زایل می شود. از آنجا که این مراسم و مناسک در داخل جمع صورت میگیرد، احساس درآمیختن با گروه اثر این راه حل را بیشتر می‌کند در این راه حل میگسارانه تجربه جنسی جای خاصی دارد و غالبا بخشی از مراسم است در اوج لذت جنسی حالتی به وجود می‌آید که مانند حالت خلسه یا نشعه حاصل از استعمال مواد مخدر است مراسم های دست جمعی بخشی از مناسک قبایل ابتدایی بود به نظر می‌رسد که در نتیجه این گونه یاشیها، انسان بیان که از جدایی رنج فراوان بکشد، میتواند تا مدتی زندگی را ادامه دهد. ولی به تدریج، تبوتا تاب استراب آرام آرام جان میگیرد و باز با اجرای مکرر این مراسم تحلیل میابد. تا آنجا که این ایاشیها مشترکن در میان قبیله انجام گیرد، استراب یا احساس گناهی به وجود نمی آورد. این اعمال بسیار درست و حتی پسندیده محسوب میشد، زیرا همگان در آن شرکت داشتند و پزشک یا روحانیان قوم آن را تایید و تقاضا می کردند. در نتیجه دلیلی برای احساس گناه یا شرمساری وجود نداشت اما مسئله در مورد عضو جامعه ای که این اعمال گروهی را پشت سر گذاشته است خیلی فرق می کند. در جوامعی که فرهنگشان با این گونه ها مغایرت دارد از این اعمال تحت عنوان الکلیسم و اعتیاد نام برده می‌شود برعکس شرکت کنندگان مراسم دست جمعی قبیله که مورد تایید همگان بود این افراد احساس گناه و پشیمانی می‌کنند این گونه افراد همچنان که برای گریز از جدایی به الکل و مواد مخدر پناه می‌برند بعد از زایل شدن خلسه و نشعه ای این اعمال احساس جدایی بیشتری می کنند و مجبور می شوند به دفعات و شدت بیشتری بدانها روی آورند ایاشی های جنسی نیز تا حدی همین حالت را دارد این اعمال نیز تا اندازه از اشکال عادی و طبیعی قلب بر جدایی و پاسخی ناقص به مسئله تنهایی انسان است اما در بسیاری از افراد که درد تنهایی آنها از راه های دیگر درمان یا تسکین نمی اشتیاق به ایاشی های جنسی به صورت کنشی در آید که تفاوت چندانی با الکلیسم و اعتیاد ندارد. این کار برای شخص به کوشش ای برای گریز از استراب ناشی از احساس جدایی در آید و نتیجه آن احساس جدایی هرچه بیشتر است. زیرا عمل جنسی بدون عشق فقط برای لحظه کوتاهی می تواند فاصله دو انسان را از میان بردارد. کلیه اشکال پیوندهای حاصل از عیاشی سه خصوصیت بارز دارند. همه شدید و حتی خشونت آمیزند. در کل شخصیت در ذهن و جسم هر دو حادث می شوند و گذران و ادواری هستند. درست عکس قضیه در آن نوع پیوندی مستاق دارد که انسان چه در گذشته و چه در عصر حاضر آن را قالاً به عنوان راهحل انتخاب کرده است. و آن پیوندی است بر مبنای سازگاری با گروه آداب و رسوم اعمال و معتقدات آن در اینجا نیز ما پیشرفت قابل ملاحظهای را مشاهده می‌کنیم در یک جامعه ابتدایی گروه کوچک است اعضای چنین ای همه کسانی هستند که خون و خاک مشترکی دارند همگام با رشد هر چه بیشتر فرهنگ دامنه گروه گسترش می‌یابد و افراد آن شهروندان یک دولت شهر یک دولت بزرگ یا اعضای یک دین را تشکیل می‌دهند حتی آن رومی فقیر نیز احساس غرور می‌کرد زیرا می‌توانست بگوید من یک شهروند رومی هستم روم و امپراتوری خانواده وطن و دنیای او محسوب می‌شد همچنین در جامعه معاصر غرب نیز اتحاد با گروه راه متداول قلبه بر احساس جدا است. این چنان اتحادی است که در آن نفس فرد تا اندازه زیادی ناپدید می شود و هدف تعلق به گروه است. اگر من مانند دیگرانم، اگر من احساسات و افکاری که مرا متفاوت سازد ندارم، اگر در آداب و رسوم لباس افکار و عقاید با الگوی گروه همنوایی دارم نجات یافتم. نجات از احساس وحشت‌آور تنهایی های دیکتاتوری برای القای چنین یک رنگی و وحدتی به ارعاب و ایجاد وحشت متوصل میشوند و کشورهای دموکراتیک به دین منظور از تبلیغ و تشویق سود میبرند در واقع بین این دو نظام تفاوت بزرگی وجود دارد در کشورهای دموکراسی ناسازگاری و عدم توافق با جامعه وجود دارد و در حقیقت کم و بیش نیز این عدم توافق وجود دارد. اما در کشورهایی که دولت بر کلی شعون زندگی حکمروایی دارد فقط اده معدودی افراد استثنایی که بعدها در ردیف قهرمانان و شهدا در میآیند نافرمانی می کنند. اما با وجود این تفاوت، در جوامع دموکراتیک به میزان بسیار زیادی توافق و همنوایی شگفت انگیزی دیده می شود. دلیل آن نیز در این واقعیت هست که تکاپوی آدمی برای حصول پیوند و اتحاد به ناچار باید پاسخی داشته باشد و اگر راه دیگر یا بهتری وجود ندارد، در نتیجه پیوند سازگاری گلعی بر انواع دیگر مسلط می شود. انسان تنها زمانی شدت وحشت از ناجور بودن، ترس چند قدم از دیگران عقب ماندن را در میابد که امق این نیاز و تمنای انسان برای جدا نبودن از دیگران را درک کند. گاهی چنین استدلال می شود که ترس از عدم سازگاری، همان ترس از خطرهای معمولی است که ناهمرنگان را تهدید می کند. اما در واقع مردم، لااقل در کشورهای دموکراسی غربی میخواهند خیلی بیش از آنچه مجبورند با دیگران هم رنگ شوند. بیشتر مردم حتی از این نیاز خود به سازگاری و همنوایی آگاه نیستند. آنان در این توهم سر میبرند که طبق عقاید و تمایلات خود رفتار میکنند. فردگرا هستند یا اینکه نظریات و عقایدشان نتیجه تفکر خودشان است. و گویا نظریات و عقایدشان تصادفاً با اکثریت یکسان است. و این نیاز در انسان وجود دارد که همیشه خود را با دیگران متفاوت بداند. سعی می این احساس را توسط تفاوتهای جزئی برای خود ارضا کند. نوشتن حرف اول نام و نام خانوادگی روی کیف دستی یا زیر پیراهنی. حق نام خود روی قاب هایی که روی میزشان قرار دارد. عضویت، در این حزب به جای آن حزب وابسته شدن به انجمن فلان به جای انجمن بهمان همه کوشش هایی است برای نشان دادن تفاوت های فردی شعار تبلیغاتی این یک چیز متفاوت است این نیاز غمانگیز را برای متفاوت بودن برملا میکند در صورتی که در واقعیت تفاوت چندانی باقی نمانده است این تمایل روز برای از بین بردن تفاوت‌ها ارتباط نزدیکی با مفهوم و تجربه برابری دارد. برابری بدان معنی که امروز در جوامع صنعتی پیشرفته دارد. از دیدگاه دین منظور از برابری این است که ما همه فرزندان خداییم و همگی از گوهر انسانی الهی سرشته شده ایم و همه یکی هستیم. این بدان معنی است که تفاوت‌های افراد باید محترم شمرده شود. درست است که ما همه یکی هستیم، اما این نکته نیز حقیقت دارد که هر فرد خود واحدی بی همتاست و خود به تنهایی است. چون این اعتقادی به بی همتایی فرد، فیلمسل در این جمله تلمود آمده است که هرکس جانی را نجات دهد در حکم آن است که دنیایی را نجات داده و هرکس جانداری را بیجان کند گویی دنیایی را تباه کرده است. برابری به عنوان یکی از شرایط رشد فردیت در حقیقت ماهیت فلسفه روشنگری دنیای قرب بود. منظور از چنین برابری که کانت آن را روشنتر از همه بیان کرده است، این است که هیچ کس نباید برای رسیدن به هدف خود دیگری را وسیله قرار دهد. انسانها تا آنجا برابرند که خود قایت و هدف باشند، نه وسیله‌ای برای یکدیگر. متفکران مکاتب مختلف سوسیالیستی، به پیروی از فلسفه روشنگری، برابری را همتراز با از بین رفتن استثمار و بهرکشی انسان از انسان تعریف کردند. خواه این بهرکشی ظالمانه باشد، خواه انسانی. در جامعه سرمایهداری امروز، معنی برابری دگرگون شده است، امروزه برابری یعنی برابری آدم ماشینی و انسانهایی که فردیت خود را از دست دادهاند. امروزه استنبات از مفهوم برابری بیشتر همسان بودن است تا یکی بودن. این نوع همسانی، همسانی تجریدات و امور است. همسانی کسانی است که کار یکسان دارند. تفریحاتشان یکیست. روزنامه واحدی میخواند و احساسات و اندیشه های مشابهی دارند. از این نظر به برخی از دستاوردها مانند تصاوی زنان که اغلب به عنوان پیشرفت بشر از آن نامی برند باید با شک و تردید نگریست. مسلما من مخالف تصاوی زنان نیستم اما جنبه های مثبت این گرایش به برابری نباید ما را بفریبد. این نیز گرایشی است برای از بین بردن تفاوتها. برابری با چنین بهای گذافی خریداری شده است. زنان برابرند زیرا دیگر با مردان تفاوتی ندارند این فرض فلسفه روشنگری که روح جنسیت ندارد عملا مورد واقع قرار گرفته است این اعتقاد که زن و مرد از نظر جنسی در دو قطب مخالف قرار دارند در حال نابودی است و همگام با آن عشق جنسی نیست که مبتنی بر این تفاوت است رو به زوال میرود مرد و زن یکی میشوند اما نه به عنوان دو جنس مخالف برابر جامعه معاصر این آرمان برابری را که در آن اثری از فرد باقی نمانده است توصیه می کند. زیرا به انسانهایی نیاز دارد که چون اتم همه یک شکل هستند تا بتواند آنها را راحتی و بدون استکاک در یک مجموعه یا کل به کار بگیرند این افراد همه از یک فرمان طبعیت می کنند در حالی که خیال می کنند از خواسته‌ها و آرزوهای خود پیروی می‌کنند. درست همانطور که تولید کلان نیاز به استاندارد کردن کالاها دارد روند اجتماعی نیز نیازمند استاندارد کردن انسان است و این استاندارد کردن را برابری می‌نامند. اما پیوندی که از راه سازگاری با جماعت به وجود بیاید حاد دو شدید نیست بلکه آرام است و از جریانی منظم و عادی اثر میپذیرد. و درست به همین دلیل اغلب نمیتواند استراب جدایی را التیام بخشد گسترش الکلیسم روابط جنسی اجباری و خودکشی در جامعه امروز غرب علائم شکست نسبی سازگاری گروهی است علاوه این راه حل فقط با نفس سر و کار دارد نه با جسم و این خود نقصیست که راه حلهایی چون میخارگی و عیاشی فاقد آنند برابری گروهی تنها یک امتیاز دارد و آن این است که است، نه منقطع و متناوب شخص در سه سالگی یا چهار سالگی با نمونه های این سازگاری با جماعت آشنا می شود و در نتیجه هرگز ارتباط خود را با گروه از دست نمی دهد. حتی تشیع جنازه شخص که خودش آن را به عنوان آخرین کار اجتماعی پیش بینی میکند با الگوهای همگانی تطابق کامل دارد علاوه بر سازگاری به عنوان راهی برای رهایی از استراب و رنج جدایی یکی دیگر از عوامل زندگی معاصر نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد و آن سهمی است که نقش برنامه کار و برنامه تفریح در زندگی انسان دارد انسان موجود از نه صبح تا پنج بعد از ظهر تبدیل می شود. او جزئی از نیروی کارمندان و مدیران است. او کمتر می تواند ابتکاری از خود نشان دهد. وظایفش را سازمان کار دیده می کند. حتی بین آنها که در پله های بالای نردبان و پایین آن قرار دارند تفاوت چندانی وجود ندارد. آنها همگی وظایفی را انجام می دهند که به وسیله ساخته کلی سازمان تجویز می شود. با سرعت و سبک تجویز شده کار میکنند. حتی نوع احساسات نیز از قبل تجویز و تعیین شده شادی، مدارا، قابلیت اعتماد، حب جاه و توانایی کنار آمدن بدون استکاک با دیگران شوخی و تفریح نیز به همین صورت عادی و برنامه ریزی شده است منتها به آن هدت و شدت کتاب ها به وسیله انجمن ها کتاب می شوند. فیلم و نمایش نامه را صاحبان تئاتر و سینما انتخاب می کنند و پول آگهی های تبلیغاتی را نیز آنها میپردازند. بقیه کارها نیز یکسانند: ماشین سواری روز یکشنبه، تماشای تماشای تلویزیون و رقبازی، مهمانی ها. از تولد تا مرگ از این دوشنبه تا آن دوشنبه، از صبح تا شام، همه فعالیت‌ها در یک خط سیر عادی از قبل قالب ریزی شده و پیش ساخته هستند فردی که در شبکه این خط سیر گرفتار می شود، چطور می‌تواند از یاد نبرد که انسان است که فردیتی متفاوت با دیگران دارد که امکان زیستن با همه امیدها و ناامیدیها با غمها و ترسها با آرزوی عشق و دلدادگی و وحشت از هیچ و از جدایی تنها یک بار به او داده شده است راه سوم برای حصول وصل و وحدت در فعالیت‌های خلاقه نهفته است خواه خلاقیت چیزی باشد که یک هنرمند در پی آن است و خواه چیزی که یک صنعتگر برای به دست آوردن آن تلاش می‌کند در تمام کارهای خلاقه آفریننده با مساله کارخیش که نماینده دنیای خارج او است متحد می‌شود نجاری که میزی میسازد، زرگری که گوهری میپردازد دهقانی که قله می رویاند و نقاشی که صورتی نقش میزند. در کلیه انواع کارهای خلاقه کارگر و مساله کار یکی میشوند. انسان در روند آفریدن با دنیای خارج وحدت می آبد. اما این تنها در مورد کار سربخش کاری که خود من آن را طرح کرده و به ثمر رسانده باشم و نتیجه اش را ببینم صدق می کند در کارهای امروزی که کارمند یا کارگر روی تسمه نقاله بیپایانی کار میکنند دیگر از خصلت وحدت بخش کار چیزی باقی نمانده است کارگر زمینه ماشین یا نظام دیوان سالاری می گردد او دیگر خودش نیست بنابراین هیچ نوع پیوندی جز همان سازگاری با جماعت صورت نمی گیرد وصل و وحدتی که به وسیله کارهای تولیدی ایجاد می شود حاصل مناسبات حقیقی افراد نیست پیوندی که از راه میخارگی و عیاشی حاصل شود ناپایدار است پیوند ناشی از سازگاری با جماعت در حقیقت اتحادی کاذب است بدین ترتیب اینها فقط می جوابهایی ناقص و جزئی به مسئله هستی باشند. جواب کامل در وصول به پیوند دو جانبه و در پیوند با شخص دیگر و در عشق نهفته است. آرزوی پیوند مشترک، اساس نیرومند کوشش بشری است. اساسی ترین نیرویی است که نوع بشر، قبایل، خانواده و جامعه را متحد و منسجم نگه می‌دارد. شکست در راه رسیدن به آن منجر به دیوانگی و نابودی می‌گردد نابودی خود یا نابودی دیگران بشریت بدون عشق توانست حتی یک روز هم به حیات خود ادامه دهد با این وجود اگر حصول اتحاد بین دو نفر را عشق بنامیم در وضع دشواری قرار می‌گیریم ممکن است پیوند از راه‌های گوناگونی به آید و اهمیت این تفاوتها کمتر از وجوه اشتراک صورتهای گوناگون عشق نیست آیا همه آنها را باید عشق بنامیم؟ یا باید کلمه عشق را برای نوع خاصی از پیوند نگه داریم؟ پیوندی که در همه ادیان بزرگ بشر دوستانه و مکاتب فلسفی چهار هزار سال گذشته تاریخ شرق و غرب به عنوان فضیلت و کمال مطلوب شناخته شده است